این یکی از جملات چالش برانگیز در کتاب مقدسه. ایمان بدون عمل مرده است. عزیزان به کلاس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. خوشحالم که امروز در درس دیگری از کلام خدا به ما پیوستید. منصور یعقوب چیه وقتی میگه ایمان بدون عمل مرده است. آیا شما فقط به واسطه ایمان یافتید یا باید عمل هم به اون اضافه بشه؟ همین جمله کافیه که خیلی از مسیحیان رو سردرگم کنه و اونها رو با سوالاتی مواجه کنه اما در درس امروز معلممون کمک میکنه تا منظور یعقوب رو درک کنیم با هم به درس امروز گوش میکنیم ما ضمن بررسی هامون حالا به رساله یعقوب رسیدیم و چیزی نمونده که سفر طولانی خودمون رو به پایان ببریم اونه دست شما که از ابتدا با ما بودید یادتونه که گفتیم. سفری در کتاب مقدس در پیش رو خواهیم داشت و حالا داریم به پایان این سفر نزدیک میشیم. این مرد مقدس که نامش یعقوب بود برای اولین نسل کلیسه عیسی مسیح می نویسه علت ها و دعواهایی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آنها خواهش نفسانی شما نیست؟ خواهشهایی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ شما در حسرت چیزهایی هستید که ندارید. برای آن حاضرید دیگران را بکشید، حسد می ولی نمی توانید آنچه که می‌خواهید بدست به دست آورید. پس با یکدیگر به جنگ و نظامی پردازید. شما آنچه را که می ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید. اگر هم از خدا بخواهید، دیگر حاجت شما برآورده نمی چون با نیت بد و به منظور ارزای حوثهای خودان را میتلبید. ای مردمان خاطی و بیوفا آیا نمیدانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خدا هست هرکه بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا می‌گرداند. این روشی که یعقوب باب چهارم رسالهاش را شروع میکنه ما دیدیم که یعقوب برادر ناتنی خداوند مردی عمیقا دیندار بود همینطور یعقوب به شدت عملگراه هست او علاقمند کاربرد تعالیم مذهبی در زندگی روزمره هست. او بیشتر به منابع علاقمند هست نه به ظاهر. مهمترین مسائل در زندگی های ما منابع چیزها هستند. یعقوب اهمیتی نمیده که ظاهر چیزها چطور هستند بلکه به من اونها علاقمند هست. او میخواد که ما منابع قدرت رو بدونیم که میتونن ما رو نجات بدن یا نابود کنند. به نظر میرسه این بخش عمده ای از موضوع نامه او هست همونطور که یعقوب در این نامه می او در مورد منابع و مراحل گناه و نجات با ما صحبت میکنه. بعد او در مورد منابع نیروهای صحبت میکنه که در تقدیس شدگی ما دخیل هستند. حقایق و موضوع این رساله که توسط برادر ناتنی عیسی نوشته شده، تقدیس شدگی هست تقدیس شدگی تأکیدی هست که به زندگی و خدمت او جهت میده. یعقوب تأکید زیادی بر روی کار قرار میده. باب به باب و آیه به آیه یعقوب ما رو به چالش میکشه. که مقدس زندگی کنید همونطور که در مقدمه این رساله اشاره کردم تعبیر و خلاصه قدوسیتی که یعقوب موعظه کرده میتونه این باشه به هر چیزی که واقعا ایمان دارید انجام میدید بقیه یه چیزها فقط وردهای مذهبی هست و کسی به وردهای مذهبی نیازی نداره در پایان باب دو یعقوب به ما میگه که ایمان به تنهایی کافی نیست شما باید کار کنید تا ایمانتون ارزش پیدا کنه. اگر کار شما ایمان شما را تایید نکنه، ایمانتون مثل بدن شخصی مرده خواهد بود. نکته ای که یعقوب برون تأکید میکنه این هست که چیزی به نام ایمان تنها نداریم. خلاصه و تعبیر دیگری از چیزی که یعقوب میگه، مخصوصا در باب دوم رسالهش مینویسه، میتونه این باشه. تنها ایمان میتونه نجات بده، اما ایمان نجات بخش هرگز تنها نیست. یعقوب در واقع، با دیگر بخش های یهد جدید مقابله نمی کنه وقتی که بر پارساشمرده شدگی توسط ایمان تاکید میکنه نامه‌های پولس مثل رومیان و گلاتیان که بر عادل شمرده شدگی توسط ایمان تاکید دارن به وضوح نقشی رو که کار در نجات ما ایفا میکنه نشون میده اون نقش همیشه این هست که اعمال ما به ایمان ما ارزش میده اما ایمان ماست که ما رو نجات میده ما ملاحظه کردیم که یعقوب رسالش رو خیلی جلوتر از رسالات پولس نوشته. بنابراین یعقوب با تأکید بر عادل شمردگی توسط ایمان بر رسالات پولس تاکید نمیکنه و اون رو رد نمیکنه. داستانی رو که در لوقا به هفت هست به خاطر دارید؟ اون که عیسی با فریسیان غذا میخورد. فریسیان حتی پاهای عیسی رو نشستند که در اون فرهنگ مثل خوشامدگویی به میهمان بود. فریسیان حتی مهمان نوازی معمولی را از عیسی دریغ کردند. اما زنی که آشکارا توسط خدمت خداوند تبدیل شده بود وارد اتاق شد بعد او خداوند را دید که پاهاش شسته نشده بود اگرچه او شاید یک فاحشه بود اما زانو زد پاهای خداوند را با اشک شست و با موهای خودش خوش کرد وقتی این زن پاهای عیسی می شست فریسیانی که اونجا نشسته بودند فکر میکردند که اگر عیسی میدانست که این زن چه جور زنی هست اجازه نمیداد او پاهای عیسی رو لمس کنه. و این کارها رو بکنه اما عیسی این عمل زیبای زن رو عملی از پرستش میدونست که ایمان او رو به تصویر میکشید عیسی به این فریسی گفت دو مرد به یک نفر بدهکار بودند یکی از اونها 500 دلار بدهکار بود و اون یکی پنجاه دلار بدهی هر دو بخشیده شد کدام یک از این دو مرد که بدهیشون بخشیده شده بیشتر اون مرد طلبکار رو دوست داشتند فریسی گفت اونی که بدهی بیشتری داشت و بخشیده شد عیسی گفت راست گفتی و بذار بهت بگم که اینجا هم همون اتفاق داره میافته. از این جهت به تو میگویم گناهان او که بسیار است آمرزیده شد زیرا که محبت بسیار نموده است. لیکن آن که آمرزش کمتر یافت محبت کمتر می نماید. چیزی که عیسی به اون فریسی می گفت این بود که تو تماما در اشتباهی تو کسی هستی که گناهکار واقعی هستی. این زن گناهکاره اما با فیض خدا و با ایمان نجات یافته این حقیقتا با این واقعیت به تصویر کشیده شده که او بیشتر دوست داره از اونجایی که ممکن بود این زن با حرفهای های عیسی سردرگم شده باشه وقتی که داشت اونجا رو ترک میکرد عیسی رو به او کرد و گفت ایمانت تورا نجات داد به این وسیله او داشت به این زن میگفت به این دلیل که پاهای منو با اشک شستی و با موهات خوش کردی نجات نیافتی این واقعیت نبود که تو منو زیاد محبت کردی، این تو رو نجات نداد، ایمانت بود که تو رو نجات داد. ببینید ایمان به تنهایی ما رو نجات میده، اما ایمان نجات بخش هرگز تنها نیست. ایمان فعال همیشه توسط اعمال نشون داده میشه و به ایمان ما ارزش میده و نشون میده که ایمان ما معتبر هست. در مورد مردی شنیدم که توسط ژاپنی ها در طی جنگ جهانی دوم در جزایر فیلیپین مورد اصابت قرار گرفت. این مرد مدیر یک مدرسه کوچک بود که توسط میسیونرها داره می شد. وقتی که مهاجمین ژاپنی وارد مدرسه کوچک شدند، دانش آموزان مدرسه در حال عبادت بودند و افسر ژاپنی در برابر چشمان دانش آموزان ای به شکم او شلیک کرد و فریاد زد که تمام پرچمها رو پایین بیارن و اونها رو زیر پا بذارن. بر اونها توف بیندازن و تحقیرشون کنن. مدیر اونقدر ترسیده بود که حتی نمیتونست حرف بزنه او فقط سرش رو به علامت مخالفت تکون میداد افسر ژاپنی دستورش رو تکرار کرد و بعد وقتی اون مرد امتنا کرد افسر به شکم او شلیک کرد به طور معجزه آسایی مدیر زنده ماند و بقیه مدت جنگ رو در اردوگاه اسرا زندگی کرد وقتی جنگ پایان گرفت نویسندهای با این مرد مصاحبه کرد و از او پرسید وقتی افسر ژاپنی گلوله رو به شکمت شلیک کرد و به تو دستور داد که پرچمها رو پایین بکشی و تو امتنا کردی چه فکری در سرت بود که سبب شد تصمیم بگیری به جای توهین به پرچم گلولهی به شکمت شلیک بشه اون مرد کوچک فیلیپینی گفت این به ذهنم رسید که در زندگی هر مردی زمانی میرسه که او باید ایمانش رو با اعمالش نشون بده و اون روز نوبت من بود این اساس پیغام رساله یعقوب هم هست اما من فکر می کنم یعقوب به ما میگفت اینکه زمانی میرسه که باید ایمانت رو با اعمال نشون بدی، فقط یک بار در طول زندگی شخص پیش نمیاد. این فرصت که شما ایمانتون رو با اعمالتون نشون بدید، هر روزه در زندگی شما پیش میاد. در تمام طول روز شما همیشه با اعمالتون نشون میدید که به چی ایمان دارید و اگر این کار رو نکنید که به ایمانتون ارزش بدید، اون موقع ایمان شما مرده است. او باب دوم رو با این تمثیل به پایان میبره. ایمان بیعمل مانند بدن بی روح مرده است یعقوب به ما میگه که یک بدن بدون روح که کلمه یونانی برای نفس هست مرده است وقتی این نفس از بدن خارج میشه بدن میمیره به همون ترتیب به قول یعقوب وقتی اعمال شما از ایمان جدا میشه ایمان شما مرده است یعقوب به شدت بر این نکته تأکید میکنه چیزی به نام ایمان بدون عمل نداریم چون که واقعاً چیزی به نام ایمان مرده نداریم. اگر ایمان شما ایمان باشه باید ایمان زنده باشه. اعمال برای ایمان زنده همونقدر حیاتی هستند که نفس برای بدن زنده حیاتی هست. یعقوب درباره منابع و مراحل گناه و نجات با ما صحبت کرده، اما حالا میخواد درباره منابع و نیروهای مربوط به تقدیس شدگی با ما صحبت کنه. یعقوب میخواد این کار رو بکنه چون که تقدیس شدگی راه حلی برای مشکل دعا هست که نجات رو الزامی میسازد. یعقوب وقتی که باب سه و چهار رساله رو می نویسه در قلبش تقدیس شدگی رو داره به این آیات از باب چهار گوش کنید و خواهید دید که یعقوب الان در مورد تقدیس شدگی صحبت میکنه یعقوب به ما گفته که کلام خدا عاملی هست که خدا از اون استفاده میکنه که به ما عطیه بده و مشکلات و گناهان ما را از میون برداره او حالا در اینجا ادامه میده و مینیویسه اما فیضی که خدا میبخشد از این هم بیشتر است چون کلام او میفرماید خدا با متکبران مخالفت می کند و به فروتنان فیض می بخشد پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد به خدا تقرب جویید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد ای گناهکاران دستهای خود را بشویید ای ریاکاران دلهای خود را پاک سازید ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید خنده شما به گریه و شادی شما به غم مبدل شود در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرفراز خواهد ساخت ای برادران از یک دیگر بد نگویید کسی که به برادر خود بد بگوید و یا نسبت به او داوری کند از شریعت بد گفته و آن را محکوم ساخته است اگر نسبت به شریعت داوری کنی تو داور شریعت شده ای و بجا آورنده آن قانونگذار و داور یکیست یعنی همان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد پس تو کیستی که در باره همسایه خود داوری می این بخش از رساله یعقوب پر از کاربورت ها هست. ملاحظه کنید یعقوب میگه چه چیزهایی را انجام بدید. تسلیم خدا باشید اگر می خواهید کلید تقدیس شدن را درک بکنید که راه حلی برای مراحل و فریب و زیرکی گناه است باید تسلیم خدا بشید. تسلیم به خدا دفاع روحانی شما هست. بعد گوش کنید که یعقوب راهکار مقاومت روحانی رو چطور شرح میده و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد وقتی شریر شما را وسوسه میکنه که گناه کنید چیکار باید بکنید یعقوب به وضوح میگه در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد به خدا تقرب جویید که اون نیز به شما نزدیک خواهد شد من سنگ بزرگ براقی دارم که به عنوان نگهدارنده کاغذ از اون استفاده میکنم در بالای اون سنگ این نوشته به چشم میخوره اگر مثل سابق به خدا نزدیک نیستید بعد وقتی سنگ رو برمیگردونید در زیرش این نوشته به چشم میخوره. ببینید کی دور شده؟ این سوال عمیقی هست. اگر شما مثل سابق به خدا نزدیک نیستید ببینید کی دور شده؟ خدا از شما دور نشده. واقعا شما دور شدید. وقتی شما فهمیدید که این اتفاق افتاده بعد به خدا تقرب جوید که اون نیز به شما نزدیک خواهد شد. وقتی یعقوب این تعلیم عملی رو به ما میده، باز هم به موازات تعالیم برادر ناتنی زمینیش عیسی حرکت میکنه. عیسی تمثیل بزرگ پسر گمشده رو تعلیم داد که تصویری از خدا و محبت خدا هست در پیرمردی که در حال دویدنه. وقتی که پسر گمشده در کشوری دور هست، پدر اجازه میده که پسر عواقب وحشتناک تصمیم گناهالودش رو تجربه کنه. اما وقتی اون پسر نخستین گامش رو به طرف خانه پدر برمی داره اون پیرمرد در حال دویدن تعییدی بر رابطه پدر و فرزندی هست که تصویری از محبت خدا هست. هیچ چیزی بیشتر از دویدن برای یک پیرمرد ناشایست و بد محسوب نمیشد. اما این روشیه که عیسی محبت خدا رو نسبت به گم ای که تصمیم گرفته به سوی خدا برگرده به تصویر میکشه. وقتی که پسر گمشده شده تصمیم میگیره به طرف پدرش برگرده پدر به سوی او میدوه بنابراین نصیحت یعقوب به موازات تعالیم برادر ناتنیاش عیسی این بوده به خدا تقرب جویید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد یعقوب به ما میگه که وقتی ما یک گام به سوی خدا برمیداریم داریم خدا دوان دوان به سوی ما میاد در اصل عیسی هم وقتی مثل پسر گمشده رو تعلیم میداد همون حقیقت رو تعلیم میداد من شما رو به چالش میکشم آیا واقعا ایمان دارید و باور میکنید که خدا شما رو دوست داره بعضی از ما چنان دیدگاه ضعیف و معیوبی از خودمون داریم که برامون خیلی سخته که باور کنیم کسی بتونه ما رو دوست داشته باشه مخصوصاً خدا ما هر چیزی رو که لازمه در مورد خودمون میدونیم وقتی ما گناه دردآوری رو به اون مجموعه اضافه میکنیم اون موقع میفهمیم غیر ممکنه که برای افرادی مثل ما در حوضه محبت خدا جایی وجود داشته باشه من اینجا هستم که در اقتدار کلام خدا به نقل از پسر خدا به شما بگم خدا شما رو دوست داره محبت خدا نسبت به شما مانند پیرمردی در حال دویدن هست که میخواست محبتش رو به پسرش نشون بده مهم نیست که شما چه احساسی نسبت به خودتون دارید خدا به هر حال شما رو دوست داره آیا اون محبت رو میشناسید؟ آیا اون محبت رو در زندگیتون تجربه کردید؟ آیا زمانی بوده که تصمیم گرفتید به خدا نزدیک بشید؟ اگر نه، امروز شما رو دعوت میکنم که اولین قدمتون رو به سوی خدا با ایمان بردارید. به خدا بگید خدا یا ایمان دارم که تو منو دوست داری. ایمان دارم که عیسی مسیح این امکان رو برای من فراهم کرد که توسط مرگ او بر صلیب به جای من با تو آشتی کنم. کمک کن راههای تو رو پیدوی کنم. کمک کن محبت تو را با دیگران تقسیم کنم. اگر این دعا رو کردید به خانواده الهی خوش آمدید. به سرپرست گروه یا شبانتون بگید که با شما بیشتر کار کنه. یعقوب به تعالیمش در باب چهارم رساله عملیش ادامه میده. یعقوب به شیوایی نصایه خودش رو همراه با کار مطرح میکنه. او می دستهای خود را بشویید. ای ریا کاران دلهای خود را پاک سازید. باز هم یعقوب به موازات ایسا حرکت میکنه. جاهای زیادی هست که ما میتونیم در کتاب یعقوب ببینیم که مانند تفسیری از تعالیم عیسی هست. عیسی در متا پنج آیه هشت گفته خوشابه حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. وقتی عیسی اون رو در خوشابه حالها گفت کلمه پاک اونجا به معنی خیلی تمیز نیست. اینجا معنی کلمه پاک دل، معنی کسی هست که دلی یک پارچه داره. وقتی یعقوب می قلب‌های قلبهای خود را پاک کنید او هم همون چیزی رو میگه که ایسا در مورد پاک دلان گفته. وقتی او به ما گفته که ذهنی یک پارچه داشته باشیم کلمه ی یونانی که عیسی و یعقوب برای پاک بهکار بردهاند کلمه ای هست که به معنی قطع کردن هست مفهومش عملا اینه که ما باید از قلبهامون هر چیزی رو که نباید اونجا باشه قطع کنیم و دور بندازیم. مضمور نویس اینطور دعا میکنه. اراده خود را به من بیاموز. من با وفاداری از تو اطاعت خواهم کرد مرا یاری کن تا با تمام دل و جان تو را خدمت کنم. این همون چیزیه که یعقوب ما رو تشویق میکنه که انجام بدیم وقتی که مینویسه ای ریا کاران دل‌های خود را پاک سازید مردد و دو دل نباشید. دلهای خود را پاک کنید و یک فکر داشته باشید چون شخص دو دل در تمام کارهای خود ناپایدار است در پایان باب چهار میخونیم ای کسانی که میگویید امروز یا فردا به فلان شهر میرویم و در آنجا تجارت میکنیم و سود فراوان میبریم ولی نمیدانید فردا چه خواهد شد. حیات شما مثل بخاری هست که لحظه ای دیده می شود و بعد از بین می رود. در عوض آن باید بگویید اگر خدا بخواهد ما زنده میمانیم تا چنین و چنان کنیم. شما از خودستایی لذت میبرید و این صحیح نیست بنابراین کسی که بدانات نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است یعقوب، پتروس و یوحنا خیلی به مسائل زمینی می‌پردازند و مردانی عملگرا هستند. یادتونه که چطور برخی از رسولان عیسا رو ملاقات کردند اونجا که در باب اول انجیل یوحنا ثبت شده. اونها شاگردان یحیای تعمیددهنده بودند. اما یحیای تعمیددهنده به اونها گفت که از ایسا پیروی کنند. اونها عملا هر جا که میرفت به دنبال او راه میافتادند ایسا رو به اونها کرد و پرسید چه میخواهید؟ اونها پرسیدند استاد کجا زندگی می‌کنید؟ به لحاظ تمثیلی اونها میپرسیدن استاد تعالیمت رو کجا به کار میگیری اونها علاقمند به الهیات سر کلاس نبودند اونها میخواستند بدونن که آیا چیزی که تعلیم میدهید اینجا کاربرد داره عیسی جواب داد بیایید و ببینید ما می خونیم که اونها اومدن و دیدن که او کجا زندگی میکرد این مردان عملگرا بودند این مردان علاقمند به کاربردهای عملی در زندگی بودند اونها به کاربردهای تعلیم علاقمند بودند در این متن عملی در انتهای باب چهار یعقوب چنین به نظر میرسه که یعقوب از برنامه پانزده ساله، برنامه ده ساله، برنامه پنج ساله یا یک راهکار طولانی مدت ناامید شده. این خیلی با قلب من صحبت کرد چون که همیشه با این مسئله کشمکش دارم. به عنوان شبان ارشد کلیسا، زمانهایی پیش میاد که رهبران کلیسا به رویا و راهکار و نقشه شبان نگاه میکنن. تجربه من اینه که 15 سال بعد شما به گذشته نگاه خواهید کرد و خواهید دید که می میدونسته که داره چیکار میکنه خداوند نقشه ای داشت خداوند راهکاری داشت حالا من قبول دارم که اینجا یک تعادلی هست یک بار من در مقابل گروهی از مردان ایستادم و تقریبا در مورد این واقعیت که من اینطوری با خدا کار کردم و خدا با من کار کرده فخر میفروختم روز بعد در رازگاهان در امثال آیه آی رو یافتم که می گفت آدم دانا سنجیده عمل می کند. اما شخص نادان حماقت خود را نشان می دهن. من متقاعد شده بودم و فهمیدم که نداشتن نقشه الزامن یک ارزش نیست اما یعقوب اینجا نکته ای داره شما کی هستید که با چنین اطمینانی در مورد آینده نقشه میکشید از کجا میدونید که خداوند امشب شما را به خانه نخواهد برد اون موقع با نقشه پانزده سالتون ساله جلوه مزهک نخواهید کرد یا اگر فردا خداوند برگرده چی؟ با نقشه پانزده سالتون احمق جلوه نخواهید کرد؟ من فکر میکنم چیزی که او ما رو تشویق میکنه انجام بدیم اینه که بگیم اگر خداوند بخواهد فردا یا سه سال دیگه این کار رو انجام خواهم داد. این نصیحت زیبای یعقوب این واقعیت رو به ما یادآوری میکنه که ما در دستان خداوند هستیم زمانهای ما در دستان او هست هر چیزی مربوط به ما در دستان او هست ما همیشه باید بفهمیم که اگر او به ما فیض نبخشه، اگر او به ما در زندگی سلامتی نبخشه، ما شاید سال دیگه نتونیم کاری انجام بدیم. در بخش باقی مانده نامه یعقوب، یعقوب به ما چیزی رو میده که میتونیم بهش مراحل راه حل‌های خدا بگیم. مانند دیگر رسولان، یعقوب هم به موضوع آمدن ثانویه عیسی مسیح اشاره میکنه. یعقوب میگه که بازگشت ثانویه مسیح راه حل نهایی تمام مشکلاتی هست که امروزه در روی زمین داریم. او ای برادران تا روز ظهور خداوند صبر کنید. زاره برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر باران‌های پاییزی و بهاری میماند. شما نیز باید با امید صبر کنید و قوی دل باشید زیرا آمدن خداوند نزدیک است. ای برادران، پشت سر دیگران از آنها شکایت نکنید. مبادا خود شما محکوم شوید. چون داور عادل آماده داوری است ای برادران صبر و تحمل پیامبرانی که به نام خداوند سخن میگفتند باید برای شما نمونه باشد ما اشخاص صبور و پرتحمل را خوشبخت میدانیم. شما درباره صبر و تحمل ایوب شنیدید و میدانید خداوند سرانجام با او چه کرد زیرا خداوند بی نهایت رحیم و مهربان است تمامی انبیاء عهد قدیم و نویسندگان عهد جدید نوشته های خودشون رو با تأکید مثبتی بر آمدن سانویه ایسای مسیح به پایان بردن چون که اونها توسط مکاشفات نبوتی دیدهاند که آمدن سانویه ایسای مسیح پایان تاریخ بشریت رو به دنبال خواهد داشت و تمامی خطاهای این جهان اصلاح خواهد شد یعقوب تا انتهای نامش بسیار کاربردی است هست او می تا زمانی که خداوند بیاید از مشاجره با هم دیگر دست بردارید از داوری همدیگر دست بردارید و از گفتن چیزهای بد به یکدیگر اجتناب کنید. هر بار که این انبیا یا نویسندگان عهد جدید در مورد آمدن ثانویه عیسی مسیح با ما حرف میزنند، کاربرد اون همیشه بسیار عملی هست. درست همین الان در پرتو این واقعیت که عیسی میآید، شما باید چه نوع آدمی باشید؟ یکی از نصیحتهای یعقوب این هست که در مورد همدیگر بدگویی نکنید. همسر من این آیه رو خیلی دوست داره من کسی رو نمیشناسم که توی این دنیا این آیه رو بیشتر از او به کار بگیره او چیز منفی در مورد هیچ کس نمیگه و اجازه نمیده در حضور او هیچ کسی چیز منفی در مورد کسی بگه اگر شما حتی در مورد آدولف هیتلر چیزی منفی بگید او بهتون میگه اما میدونید اگر هیتلر نبود امروز ما فولکس واگونی نداشتیم او حتی سعی میکنه در مورد هیتلر هم چیز خوبی بگه در ابتدای ایمانش او یک قسم پنجگانه خورد یکی از اونها این بود که اگر اون نتونست چیز خوبی در مورد کسی بگه حق نداره اصلاً چیزی در مورد اون شخص بگه من فکر میکنم که یعقوب اگر امروز بود از همسر من قدردانی میکرد چون یعقوب مینویسه شما نیز باید با امید صبر کنید و قوی دل باشید زیرا آمدن خداوند نزدیک است ای برادران پشت سر دیگران از آنها شکایت نکنید مبادا خود شما محکوم شوید چون داور عادل آماده داوری هست. در همون انتهای رساله یعقوب ما متن زیبایی داریم که میتونیم بهش زندگی بدن یا کلیسا بگیم. این همون چیزی که امروز ما بهش زندگی بدن یا زندگی کلیسا میگیم. در عهد جدید به تمامی اعضای بدن نصیحت شده که به دیگر اعضای بدن خدمت کنند. این نو زندگی بدن در بسیاری از جاها در عهد جدید تعلیم داده شده. تمام عطایای روح تراهی شدهاند تا زندگی بدن یا مراقبت بدن از کلیسا رو تقدیس کنند اگه خدا به من عطای روحانی میده به این خاطر هست که شما برکت بگیرید و تقدیس بشید و اگر خدا به شما عطیه روحانی میده به این دلیل هست که من بتونم برکت بگیرم و تقدیس بشم ملاحظه میکنید که در باب آخر رسالش یعقوب به ما کاربورتای عملی در عرصه زندگی بدن یا کلیسا میده در باب پنج آیه شانزده یعقوب آیه او میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای سمیمانه ی شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. من واقعا این آیه رو دوست دارم. چیزی که این آیه میگه اینه. وقتی دو ایماندار یک جا هستند، یعقوب به اونها فرمان میده که با همدیگه رو راست باشند. به دقت ملاحظه کنید که او اونجا نمیگه به گناهان برادرتون اقرار کنید. یعقوب منظورش نیست که شما نزد برادرت بری و بگی من این گناه و یون گناه رو در زندگی تو دیدم. این چیزی نیست که یعقوب میگه. یعقوب میگه که شما نزد برادرت به گناهان خودت اعتراف کن. کلمه گناه در بعضی از ترجمه ها به خطا ترجمه شده. اگر شما نزد برادرتون به گناهانتون اعتراف کنید، برادرتون باری خواهد داشت تا برای شما دعا کنه و اگر او گناهانش رو نزد شما اعتراف کنه شما این بار رو خواهید داشت که برای او دعا کنید بعد در نتیجه این دعاهای متقابل بین شما و برادرتون شفای روحانی رو تجربه خواهید کرد بعد دعاهای شما و دعاهای برادرتون اونقدر صادقانه خواهد بود که بیشتر مفید واقع خواهد شد در پرتو این نصیحت پس چرا وقتی ما یکجا جمع میشیم سعی داریم همدیگر رو فریب بدیم تا حالا اینو ملاحظه کردید ایماندار دیگه ای رو میبینید و میگید امروز چطور گذشته؟ او جواب میده عالی خارق العاده و اما بعد شما میفهمید که در اون لحظه او بسیار افسرده بوده و احساس می‌کرده نفسش قطع شده او در وضع وحشتناکی بوده اما اجازه نداده شما بفهمید یعقوب بسیار عملگرا هست. یعقوب به ما میگه زمانهایی خواهد بود که کسی از اجتماع روحانی شما از شما خواهد پرسید اوضاع چطوره اگر به اونها اعتماد کنید اگر اونها رو دوست داشته باشید و اگر مطمئن باشید که سوژه صحبت یک شنبه آینده دیگران نخواهید شد، اگر کمی به اونها اعتماد داشته باشید، اون موقع باید احساس واقعیتون رو به اونها بگید و اینکه واقعا حالتون چطور هست اگر این کارو بکنید، ممکنه اونها باری رو احساس بکنند که برای شما دعا کنند. من به عنوان یک شبان این کار رو انجام دادم و ملاحظه کردم که بسیاری از مردم خیلی تعجب کردند. اونها میگفتند ما نمیدونستیم، شبان ها هم مشکل دارند. واقعا منظورتون اینه که مشکل دارید من واقعا برای شما دعا خواهم کرد شبان اگر با صداقت و روراستی با مردم در میون نذارید گاهی اوقات بعضی از مردم فکر می‌کنند که ایمانداران مشکل ندارند و بعد تعجب می‌کنند که چرا خود اونها مشکل دارند اونها در حال سرگردانی به خونه میرند حتی اگر ایماندار باشند چون که اونها مشکلاتی دارند و ایماندارانی ای را میشناسان که به نظر میرسه هرگز مشکلاتی نداشته یعقوب به ما میگه ماسک هامون رو برداریم. نقاب به چهره نزنیم و خود رو چیزی که نیستیم نشون ندیم. برادران و خواهرانی که پیرو مسیح هستند، باید های خودشون رو بردارن و به قلب یک یکدیگر نگاه کنند. در باب پایانی یعقوب متن بزرگی در رابطه با شفا میبینیم. یعقوب تعلیم میده که شفا زمانی واقع میشه که کسانی که در بدن مسیح هستند با همدیگه ملاقات میکنن. امروزه لازمه که این با صدای بلند و واضح گفته بشه. من به شفای با ایمان باور دارم من ایمان دارم خدا میتونه شفا بده اما حالا به دقت گوش کنید معتقد نیستم که اراده خدا همیشه بر شفا باشه من معتقدم خدا میتونه شفا بده و شفا میده زمینه ای که خدا در اون شفا میده چیه؟ رو راست من در کتاب مقدس اساسی برای شفا دهنده ایمانی پیدا نکردم که خدمت شفای بزرگی داشته باشه و به خاطر اون خدمتش بسیار بسیار بشه. من این رو در کتاب مقدس ندیدم این چیزیه که من در کتاب مقدس دیدم و اگر کسی از شما بیمار است باید از مشایخ کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او رو با روغن تطهیر نمایند کسی که بیمار هست باید اونقدر ایمان داشته باشه که مشایخ کلیسا رو دعوت کنه تا براش دعا کنند بعد مشایخ کلیسا باید اونقدر ایمان داشته باشند که وقتی از اونها دعوت شد بیایند وقتی مشایخ اومدن، اونها باید بر شخص بیمار دست بذارن و او را رو با روغن مس بنا به گفته یعقوب این روغن نیست که شخص بیمار را شفا میده. یعقوب میگه دعایی که از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد بخشید. همینطور جالبه که به کلمه روغن توجه کنید اون ای برای روغن طبی هست بنابراین یعقوب میگه هم دارو به کار ببرید و هم دعا کنید. یعقوب در ادامه به ما میگه که اگر شخص بیمار مرتکب گناهانی شده باید به گناهانش اعتراف کنه و شخص بیمار باید متقاعد بشه که گناهانش بخشیده شدن گاهی احساس گناه از گناهان اعتراف نشده بخش بحرانی اون بیماری هست این متن در کتاب یعقوب متن بسیار مهمی در مورد شفا هست این متن به ما میگه که مسیح زنده قیام کرده میخواد که شفا در عرصه کلیساهای محلی جاری بشه این جایی که باب پنج یعقوب میگه شفا باید در اون جاری بشه. اون عده از ما که کلیسایی رو رهبری می کنیم بر اساس تعالیم واضح یعقوب برای شفای گوسفندانی که شبان اعظم به ما سپرده باید اونقدر ایمان داشته باشیم که خدمت شفا رو انجام بدیم اصول کاربردی زیادی در این نامه کوچک یعقوب وجود دارند اونها رو مطالعه کنید و از خدا بخواهید که اونها رو در زندگی شما و زندگی کلیساتون به کار بگیره. دوستان قالباً از معلممون شنیدیم که میگه ما به خطا کلیسا رو به عنوان یک پمپ بنزین نگاه میکنیم. جایی که فقط میریم تا به لحاظ روحانی پر بشیم. در حقیقت ما باید پر از روح وارد کلیسا بشیم و تماماً آماده باشیم تا برای سایرین برکت باشیم خودمون رو به خاطر دیگران پر کنیم و آماده باشیم از خداوند بشنویم. اشتیاق خدا اینه که ما با آمادگی وارد کلیسا بشیم که منبع برکت برای دیگران باشیم نه که فقط برکت بگیریم تا برنامه بعدی امیدوارم خدا شما رو تبدیل به برکتی برای دیگران بکنه و ها شما رو در ایمانتون و در پیروی از خداوندمون عیسی مسیح تشویق کنه از همکنون برنامهتون رو طوری ترتیب بدید که در جلسه بعد نیز با ما همراه باشید و از دوستانتون دعوت کنید تا در این جلسات بررسی که تا مقدس با شما هم راه باشند.